سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخنرانی تذکیه نفس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیه السلام جلسه سوم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل طیبین التاهرین تا لا سکی ماوریه سر سل اللهم انت السلام و منك السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزه عما یسفون و السلامون علی المرسلین لله رب العالمین السلام علیکم یهنبی و, و رحمت الله و بره السلام علی جمعی انبیاء الله و رسوله و ملائکت. السلام علینا و علی عباد الله الصالح. السلام على علی السلام علا علی المؤمنین السلام على سدیرت الشهید السلام علا الحسن و الحسین سیده شباب احل الجنه اجمین السلام على علی ابن الحسین زین العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبی السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسی ابن جعفر الکاظم السلام على علی ابن موسی الرضا السلام على محمد ابن علی الجواد السلام علی ابن محمد الهادی السلام علی الحسن ابن علي زکی الاسکری السلام علی الحجت ابن الحسن الغائم یا <تصفح> علی ابن طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکیل الله مقدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیحن اندالله اشولنا اندالله الله تعالی کتابه و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها قد افلها من زکاها و قد خواب من دستاها گفتیم تزکیه نفس در اصل لغت یعنی نمو نفس، رشد نفس و تعالی نفس چون لازمه رشد نفس پاکسازی نفس است بدین جهت تزکیه نفس رو به معنی پاکسازی نفس از آلودگی‌ها هم معنی کردیم در بخش رشد نفس و تعالی نفس اگر ما معتقدیم و قائلیم که نفس ما انسانها دعای نزوجه و قدرتی از هستیست که امکان رشد و نمو برای او هست برخی موجودات رشد و نمو ندارند. شما اگر در دنیای جماد گرانترینش مثلا بریلیانی منحصر به فرد سکهی خیلی گرونبه ها در ظرفی قرار دهید، در هر آب و هوایی در هر خاک و هر ساخچب و هر کمودی در هر صندوق و هر فضا و مکانی که در نظر بگیرید آیا امکان رشد و نمو و تکسیر و افزونی برایش هست خیر در همون حد خود باقی میماند و یا تحت تأثیر عوامل طبیعی فرسوده میگردد اما اگر بذر گیاه رو در نظر بگیرید امکان رشد و تعالی در حد گیاه دارد با توجه به عواملش که اون عوامل مؤثر دخالت کند اگر شما تخم یک پرنده رو به عنوان حیوان در نظر بگیرید امکان رشد و یک پرنده شدن برای او هست با توجه به شرایطی که نیاز دارد که تأمین گردد چون رتبه هستی و درجه موجودیت این نبات یا اون حیوان نسبت به جماد ولو برلیان یا تلا قابل مقایسه نیست این رشد و نمو برای اون نبات و حیوان خواهد بود ولی برای اون جماد نیست اگر تذکیه نفس قرآن گفته است و نفس و وما سواها سالحمها فجورها و تقواها قد اصل هم زکا و رستگار اون کسی که این نفسش را تزکیه میکند که در اصل بحث لغت یعنی رشدش میدهد خب اگر دانه را رشد دهیم معلوم است که چه میشود گیاه میگردد حیوان به اون درجه خاص حیوانی خودش میرسد نفس به کجا باید برسد رشد نفس چیست که یک اگر من قائل به این معنی نباشم و برای نفس چنین ارزشی رو قائل نگردم در صدد جستجوی عوامل مؤثر رشدهنده نفسم بر نخواهم آمد چون انسان نفس دارای این قدرت دارد اگر عوامل را شناخت و در اختیار اون عوامل قرار گرفت سلمان و ابوزر و مقداد و دیگران و دیگران خواهد شد این انسانی است که نفسش به اونجا میکشد اما اگر عوامل را نشناخت و در اختیار عوامل قرار نگرفت یا نیمبند قرار گرفت من مخصوصا امسال تعمدم و قصدم در این دو شب از بحث تذکیه این نکته است که با این تمثیل بگم و برم جلو اگر بذره گیاه را در حالت عادی ما نگاه کنیم در حد یک بذر مفید است اما میخواهم سبز بشه رشد کنه بیاد بالا در یک شرایط رشدی نیمبند قرار میدم کمی جوانه زد هنوز ریشه ندوانیده هنوز ساقه و شاخه او بالانه اومده من آب رو قطع می هوای مناسب و کود لازم را بهش نمی‌رسانم. آیا این دانه زایع می یا نه به اندازه همون دانه جوان نزده هم دیگر مفید نیست یا اگر تخم یک پرنده رو در نظر بگیریم، در حالت عادی این تخم مرغ به عنوان یک شیعی که لااقل خاصیت غذایی دارد میتواند قابل استفاده باشد ولی میخواهیم از این حد بگذرد یک پرنده شود زیر بال مرغ قرارش میدیم اگر 20 روز وقت میخواهد ده روز مونده از زیر بال مرغ خارج میشود جوجه نمیگردد تخم مرغی که مواد غذایی مفید داشته باشد که از او استفاده کنیم هم نخواهد بود بلکه یک شیء متعفن گندیده فاسدی است که باید دورش بریزند انسان با نفس انسانی اگر زیر بال اولیای الهی قرار گرفت اگر مربیان الهی این انسان پر استعداد را در زیر بال و پرشن گرفتن پرواز میکنن، آنان دیگر موجود خاکی نیستند اگرچه ظاهرا خاکیاند سلمان ظاهرا در این عالم بود سلمان فوق این عالم بود ابوذر و مقداد و عمار و اویس و جابر جوفی و زراره و ابو بسیرها و علی ابن ها و دیگران هرگز صحبت حاضر قائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است مستاق بارزه این معنا بودن ولی مشکل این است که بشر یا زیر بال این مربیان نرفت و نمی روید. یا اگر رفت تحمل نمی کند صبر نمی نماید استادگی و استقامت نمی برزد. تا اون مرحله لازمی که این استعداد بروز کند و این انسان از فرشت برتر در ملکوت عالم به پرواز درآید پس نفس میتواند رشد کند چون نفس داریم این مسائل برای ما انسان مطرحه این نفس انسانی بزرگترین جنبه ارزشی نفس در وجود ما به عنوان تجلی نفس که میتواند عامل تعالی ما باشد عقل و دل قرآن کریم یک لغت به کار برده است که هم معنی عقل در او هست هم معنی دل اون کلمه قلب است قلب هم به معنی فعاد ترجمه شده هم به معنی عقل ما کلمه عقل تعقل در قرآن زیاد داریم کلمه فعاد و افعیده در قرآن آمده است اما اگر قلب گفته شده باشد گاهی با گرینه به معنی فعاد است گاهی با گرینه به معنی عقل است اگر میگوید لهم قلوب لا یفقهون به ها قلب دارن تفقه نمی کنن. این قلب یعنی عقله و در سوره قاف آیه 37 ان فی ذالک للذکرا لمن کان له قلب در اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل از امام کاظم علیه السلام به شاگرد لایقشون هشام فرمودن ای عقل ان فی ذالک لمن کان له قلب امام کازم به خوشان فرمودن ای عقل پس یک تجلی نفس عقل است یک تجلی نفس دل عقل میفهمد، دل میبیند. اگر ما عقلی که باید بفهمد و دلی که باید مشاهده کند و ببیند یک خود ما نگذاریم اصلاً عقل در معرض تعقل و تفکر و تحلیل مسائل و اندیشیدن قرار بگیرد ولو عامل خارجی هم مؤثر باشد یا دل را مثل آینه ای که کارش انعکاس است من نمیگذارم این آینه در مقابل عواملی قرار بگیرد که منعکس کند ولو عوامل خارجی مفید و ارزنده باشد همینجا اشاره کنم اجازه بدید وارد آیات روایات میشم مفصل اگر این آینه باشد خاصیتش انعکاس و گرفتن یک صوری در خود پنج مشکل گاهی فیدا میکند یک جیوه آینه از بین میرود میشود یک شیشه معمولی این شیشه معمولی هرچه در بهترین منظره مقابلش قرار بدید ترین طبیعت زیبا رو در مقابل این بگذارید در این نقش نمیبندد چون جیوه ندارد قلب ما اون آینه است که گاهی جیوهش نیست که امشب بخوایم بحث کنیم دو گاهی جیوه دارد آینه است اما اونقدر گرت و گووار روش نشسته، در مقابل چهره نورانی امیرمنی ایستاده اما شکل نمیگیرد نقش در او بسته نمی شود. اگر زیباترین تابلو رو شما اینجا زدید، این آینه ای که پر از گرت و غار است در مقابل این تابلو گرفتید نقشی در او ایجاد نمی شود سه گرت و ندارد یک پرده ای بین اون تابلو و این آینه قرار میگیرد یک جیوه باشد دو گرت و غبار رو به سه پرده رو کنار بذاریم چهار پرده ام نیست گرت و هم نیست آینه رو برگردنده ایم شما که آینه دلسون متوجه اون تابلو است. چهره نورانی علی. حقیقت ملکوتی فاطمه زهرا عظمت عالم برتر و درخشندگی امام است بر آینه قلبت اون چنان درخشیده که سر از پا نمی‌شناسید میخواهید منفجر گردید اما منی که این آینه را برگردوندم رو به این سنگ معمولی گاهی با تعجب از شما میپرسم، شما را چه شده چه را مگر غیر از یک سنگ ساده چیز دیگری هم می شود در این دل ایجاد شود میگویید آینه رو برگردان که امشب شب برگردندن آینه دل به سوی خدا و اولیای خداست تا این لحظه اگر پرده بین ما و او بود بزنیم کنار اگر قرط و رو دل ما نشسته بود بگریم با این اشک کشم شوش بدیم اگر ما آینه رو برگردنده بودیم رو به دنیا، تعلقات دنیوی، شهوات شکم و لذت میز و پول و مقام، این آینه رو امشب برگردونیم و بگیم ما ارزش این طرف است، آینه به این طرف بود، باید برگرده. مرحله بعدی، پنجم، گاهی این جیبه دارد، گرد ندارد، پردم کنار رو به او هم هست. اما میخواد حقایق بیشتری در حد مقابله آینه با این منظره در اون نقش ببندد اینجا یک آینه بزرگ میخواد پشت سر قرار بدید یک محفظه بیشتری رو مثل عدسی کوچکی که در اون جامیده و اون میتابانه توی اون منظره شما از این آینه که اونور رو نگاه میکنید با اون ای که پشت سر قرار گرفته انعکاس میده این ها رو میخوام در این چند شب برسم را خدا داد حقایق رو در عالم قرار داد یک آینه ای که همه حقائق را در او میتاباند به نام ولی الله گذاش من شگونه با او مواجه هم که در آینه دلم نقش ببنده اگر بس همه این حسینیه اگه یک تابلو زیبای ارزنده این گوشه باشه همه جمعیت به سوی دیگر بنگرند اون کس که متوجه ارزش این تابلو شده فقط نگاه به این میکنه آنانی که در شب می قدر میخوان قدر شناس بشن میخوان ارزشیاب بشن میخوان فریب نخورن یک به دل مراجعه کنیم به قلب برگردیم بذارید از قرآن بگم و روایت و نحجم و لاغه سوره شعره آیات هشتاد و هشت و هشتاد و بنون. روزی که برگاهی قیامت روز قیامت چه روزیه و و یوم امروز میخوان ممتاز بشن امروز میخوان مشخص بشن تو دار دنیا ممکنه بنده در اینجا ادعای تدیان تقوا روح پاکی داشته باشم ولی واقعیت امر یک فاسق فاجر نعوذ بالله آلوده ای که خدا کیشم قبولم نکنه باش اما روز قیامت چیه؟ همه چی یوم تبل سرائره همه رو میشه افراد اونجا مشخصم اونجایی که همه رو میشه یا لا فا مال ولا بلون الا منعت الله بقلب قلب سلیم یک قلب سالم حالا قلب, قلب سالم چیه سوره سابسات آیه هشتاد و سه و هشتاد و و من شیعتهی لعبراهیم حای شیعتهی برمی به حضرت نو راجب عزت نور بحث میکنه آمد خاص جامعه رو قربال کنه هی hey مهلت داد هی hey وقت گذاشت هی hey اعلام کرد آی مردم توبه کنید مردم برگردید مردم خوب بشید مردم با خداییتون آشتی کنید 950 سال یا 1000 سال به طبق تفسیری که اون آیه میشه کاری ندارم وقتی در این 950 یا 1000 سال گفت و گفت و گفت یه عده اندک برگشتن ندا اومد حالا دیگه کافیست طوفانی باید در بگیرد این عده بیان تو کشتی اینا جدا شدن بقیه دیگه باید برن دیگه قربال باید بشید بسه دیگه چقدر گفتن یه رازی در دوران بعد از پیغمدر اسلام دیگه مثل طوفان نو نیست دیگه مثل عذاب قوم آد و سمود نیست تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام از بعد از رحلت پیغمبر تا دوران غیبت امام زمان علیه السلام از غیبت امام زمان تا ظهور امام زمان بناس غربال بشن دربال شده ها جدا بشه بلا و ابتلا تو این مقوله است حالا غربال شدن با کشتی نو یه اده ممتازا و این من دنبال رو و اون کاروان نوحی که یکی از برجستگان عالم است لا ابراهیم همانا از ازجا ربهو به قلب سلیم ابراهیم به چه درجه رسید؟ بحث های شب جمعه رفقه هایی که بودن یادشون بیاد هشت شب گفتیم و ازب اب طلا ابراهیم ربهو به کلماتن فاعتمهان اینی جائلو کل ناف اماما یعنی چی اون مقام در اثر قلب سلیم ابراهیم بود اگر شیعه او بود دنبال او رفت رسید به اونجا که کزالکه نوری ابراهیم ملکوت سماوات به جهت اینکه از جا عرب به قلب سلیم سوره کهف آیه 28 وست نفسك مع الذین یدعون ربهم نگهدار نگه نفست رو استقامت داشته باش راجب های نفسانی مع با ان ای که یدعون هم خدا را میخوانند دعای در بارگاه الهی دارند در بامدادان و شامگاهان شب و روز یریدون وجهه او را میخوان ولا تعد اینا که انهم تورید و الحیات حیات دنیا از اونا چشم نپوشید نسبت به اونها خودتو تو برنگردونیا کیا؟ اونایی که صبح شب میگم خدا وجه خدا میخوان دلشون متوجه خدا کردن شما چشماتو برنگردان چهرتو برنگردان تورید و زینطل حیات دنیا به خاطر زینت حیات دنیا زرق و برق و زندگی مشغله چند روزه این عالم شما را از اون دسته باگ ندارد ولا توت من اغفلنا قلبه هون ذکرنا مطیع نشید دنبال روی نکنید نرید پشتر اونهایی که من اغفلنا قلبه هون ذکرنا دلشون از یاد ما غافل کردیم. غافلت. این دل بیاد خدا نیست. خطبه دیه هشتاد و هفت نحجه الباقی از زبان امیرالمؤمنین عليه السلام در این خصوص بگم. قسمت قبلیش حضرت گله میکنن. خب، انشالله امشب سری میرسم. میخوام یه مقدار در این رابطه درد دل از تعمیر رو هم بخونم انشالله. حضرت درد دل میکنن چرا اینجوریه؟ این چرا گوش نمیدن چرا فریسته میشن چرا دنیا گولشون زده چرا متوجه آخرت نیستن چرا به فکر تعالی انسانیشون نیستن چرا اینا مثل امار نمیشن اینا رو میفرماد بعد در پایان خطبه 87 فت صورت و صورت و ول قلب و قلب حیوان اینا صورتشون صورت انسانه قیافه ی آدمی دارن دلشون بذارید کنار اون آیه لهم غلوبان لایت و هونبه ها آخرش اولائکه کلان آم هم ازل اگر کسی دل را دل نکرده است به عرض اول امشب من دقت بکنید شما یه بریلیان رو نمیخواید رشتش بدید یه دانه یه گیاه رو میخواید رشتش بدید یک تخمه پرنده رو میخواید رشتش بدید چون این قدرت رو داره قلب حیوان که نمیخواد بفهمه، قلب حیوان که نمیخواد تعالی داشته باشه، قلب انسان که باید به اینجا برسه. اگر قلب انسان به اینجا نرسید، خب این قلب قلب حیوانه. ولی اون صورت صورت انسان باشه. سال ها صورت و صورت انسانن، ولی قلب قلب حیوانن. لا یارفو، با بال خدا، سیت که قلب شده قلب حیوان. چه به معنی عقل چه به معنی دل دیگه به کار نمیوفته وقتی به کار نیفتاد باب هدایت را لا يعرف نمیشناسه معرفت نداره وقتی معرفت به باب هدایت نداشت تبعیت از هادی نخواهد داشت ولا باب العم سیصد عنه و باب گمراهی و نابینایی رو هم نمیشناسه که اونو ببنده بگی این در در گمراهی این در در هدایت زالک میتل احیا زالک میتل احیا اینا مردگانی ان در میان زنده ها نفس میکشند غذا میخورند راه میروند ولی علی در نهج البلاغه اینها رو مرده میداند که اینا قیافه زنده دارند خب حالا چه می شود که قلب رشد میکنه شمی که گل بروش نمیکنه. اینجا قسمت مهم بحثه. همونطوری که یک دو تا مش بذر گياه رو شما به من میدید، یه مشه پاشیدم اینجا آب و کود بهش اومد بالا چه گلوی گياه زیبایی شد. یه مش دیگه بذر رو تو همون خاک میپاشم. همون آب و کودم بهش میدم. هیچ شروع نمیکنه و بالا نمیاد. چرا یکی کنار علی ابن ابی طالب میشه اویس قرنی و میسم تمار و یکی دیگه در کنار پیغمبر و علی ابن ابی طالب میشه کسی که سیلی به صورت دختر پیغمبر میزنه چی شده آقا؟ این دو تا بعض رو ببینید؟ آیا کسی جرعت دارد بگوید خداوند در ابتدا این دوتا رو مختلف خلق کرد که این یکی قاتل ظالم فاسق تاجر شود این یکی سلمان گردد نه؟ این تهمت به خداست این جسارت بعضات حقه خدا بد نمی آخریند کنی و مولودن یولد و علل فتره چی شد مثل این هم این بعد بازر سالم بود همین بازر سالم بود اما من اینجا اومدم این بازر رو ریختم تو آب جوشی دم قدرت رویشش رو گرفتم حالا تو این خاک میاریم دیگه رشد نمی کنه قرآن میگوید چه میشود بعضی دلها در کنار ما اولایت علوی روشن نمی کنم چه می شود بعضی قلبها در کنار اون آثار ارزنده انبیا هیچ تغییر نمی دو دوتا آیه می خونم این دعایه رو دقت بفرمایید با یک حدیث سوره بغره آیه هفتاد و چهار سم قصد قلوب کم من بعد زالک صحیه کل حجاره او اشد و غصبتن ثم قصد قلوب کن سپس دلهای شما قصی شد من از کتاب لغت المنجد قصابت رو اجازه بدید معنی کنم ارزن قاسیه زمین قاسی ارزن لاتن به تو قاسیه زمین قاسیه است که هیچی توش سبز نمیشه شما از زمین رو ببینید یه زمینیه مهندس که شاورزی و باقبان میاد میگه آقا رو اینجا به پاشی خیلی خوبه این زمین شفاف خاکش مناسبه آب که به ریزی میگیره ریشه میدوانه میاد بالا اما یه زمین دیگری سفده سخت ای خاک روست مثل ملات سیمان چنان به همدیگه گرفته که میگه جون زایه نکن. چون بکاری در زمین عصر کار تا بروید هر یکی را صد هزار. اینجا چرا داری میکاری دانه بجر رو. پس ارزان غاسییه ارون لاتون به تو شیعه زمینی که چیزی نمیرویانه است چیزی سبز نمیکنه. لییلتون قاسییه. شب قاسی قاسیه رو برای شب هم آوردن شدیدت و ظلمه این در کتاب لغت یعنی ظلمتش کیرگیش خیلی شدیده خب قصد قلوب کم قلب قاسی یعنی چی قرآن میگه سم قصد قلوب کم من بعد زالک صحیه کل هجاره هجاره یعنی سنگ مثل سنگ شد سنگ رشد میکنه آب بدید به سنگ کود بدید به سنگ چرا نیرویتون می هدر میدید نرود میخواهنین بر سنگ آقا موعزه علی سریاد زهرا در دل سنگ اثر نمی کند. خدا دل را سنگ نیافریده است گناه دل را قسی می کند. لغزش دل را قسی می کند شب قدر، شب آشتی با خداست یعنی از خودمون شروع کنیم بیایم باران رحمت خدا می ریزد ولی قلب من قصی شده است. در این قلب من تاثیر ایجاد نمیکنه. کنه سمه قلوبکم کن من بعد ذالک من بعد زالک رو باید با آیات قبلش رفت بدیم تا معلوم بشه یعنی بعد از این گناهان بعد از این لغزشها ها آقا از گناه باید ترسید چقدر جرعت آدم داشته باشه گناه کنه مگر اینکه نداند گناه با وجودش چه می آقا این بذر دل من و شما که باید درختی از او سبز بشه شاخه هاش بره تو ملکوت بره تو لاحوت از ناسود سر تو جبروت سیر کنه اون وقت من چونی عرفا رو نمیفهمم از گناه باکی ندارم با گناه قلبم رو میکنم کنم سنگ این سنگ هرچه باران انایت علی می ریزه هرچه دعای امام عصر در این فضا پخش میشه، اما به من که چیزی سرایت نمی کنه سم قصد قلوب کم من بعد زالک صحیح کل هجاره این دل شده مثل سنگ وای بعدش رو دقیق کنید او اشد دو غصبت یا اینکه از سنگ سختتر چرا؟ چون ادامش آیه میگه دیگه من رخ نگیرم آیات بعدی رو بخونم میگه برای اینکه که سنگ گاهی بازی کشمه از توش در میاد بعضی سنگ ها شکافی بر میداره یا آبی از او جرایان میابه اما این قلب سختیش اشد دو غصبه از اون سنگم سخت‌تر میشه امیده هیچ سمری و هیچ خیری از این دل سنگ شده نیست زمر آیه 22 افمن شرح صدرهو لیل اسلام صحابه علا نورن رب بهی اون کسی که شرح صدر میدانی صدر سینه سینه گشاده نه یعنی این از نظر ورزشکاری ما یه مقداری این جنبه های جسمیمون رو فراخ کرده باشیم همونطوری که قلب به معنی بتن و دهلیز نیست این سینه هم به معنی سینه مادی نیست همون قلب ما همون جایگاه قلب ما این صدر بزرگواره یعنی بزرگی روح داره ربش شهلی صدری فهوه علا نور من ربه نورانیت پروردگار بر این تابیده است فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله قلائه کفی زلال مبین فویلون وای للغاسیت قلوبه هم بر کسانی که قلبشون رو قصی کردن قصیل قلب شدن من ذکر الله در اثر این قصابت قلب از یاد خدا قافلن اولا اکفی زلال مبیل یه هم در این زمینه بخونم کافی جلد دو سطحه 268 باب زنوب حدیث شماره یک انا ابي عبد عليه السلام از امام صادق علیه السلام قال فرمود خان ابي يقول امام صادق میفرماید بابام اینو کانه یقول کراراً عرض کردم یه وقت میگه قال امام یه وقت میگه کانه یقول قال یعنی فرمود کانه یقول یعنی کراراً میفرمود هی hey, این نکته اشاره میکرد با یه اشاره رد بشه نبود کان عبی یقول بابام کرارن این رو می ما من شیئن افسدو للقلب من خطیئه ما من هیچ چیزی نیست افسدو للقلب فاسد تر مذرتر برای این قلب من خطیئه از گناه این القلبه لیواقه الخطیئه سما تزالو بهی حتی تقلب علیه سی سر اعلاخو از صلاح اینالقلب همانا قلب وقتی با گناه همراه شد سما تزالو بهی حتی ادامه یابه یعنی برادرم و خاهرم کم کم قلب عادت میکنه کم کم اونسه به گناه میگیره با یه مثال بگم بنده با اولین بار که میخوام یه گوستند رو سر ببرم دستم میلرزه رنگم زرد میشه آمادگی ندارم میترسم اما بار دوم سوم دهم وقتی غصاب شدم دیگه به راحتی روزی صد تا گوستند ممکنه سر بزنم اولین بار که میخوام یه دروغ بگم این فطرت هم یه تلنگوری به من میزنه ولی کم بار پشت سر هم گفتم امام باغر میفرمای امام صادق میفرمایم بابام امام باقر میفرمود وقتی قلب با گناه همراه شد سما تذال به همینجوری باش میمونه حتی تقلب علیه تا این که برو غلبه میکنه به این صورت که این قلب واژگونه میشه پایینش میاد بالا بالاش میره پایین یعنی چی یعنی مثال بزنیم در انسان اگر انسانی واجگونه شد پاهاش اومد بالا سرش رفت پایین بیمار این نمیره این نمیتونه این انسان مثلا تعادل بدنی به هم خورده نمیتونه رو واسه را بره میگه قلبی که باید شرائط قلب داشته باشه دیگه نداره خب این قلب چه میشه حالا بریم در واقعی امشب آقا علی کی بود چه مردم حرفشو گوش نکردن و با علی چه کردن من امشب حالا چند فراز از خود امیر المؤمنین از نهجل بلاغه میخونم نه فقط تاریخ گذشته رو بگم برای امشب خودم که خودم به این فکر فرو برم اگر آینه دلم رو زنگار گرفت اگر قلبم رو با انصب گناه کیره کردم دیگه هر فهرد تو گوش من فرو نمیر دیگه لذت نمیبرم یه مثال بزنم وارد بشم آقا دو نفر رو در نظر بگیرید توی مجلس غیبت نشستم یکی تا قیبت رو میشنبه رنگش زرد میشه چهرهش بر میگرده یه حال دگرگونی پیدا میکنه جلسه رو ترک میکنه چرا؟ او میگه من خوندم یا تجربه کردم مثل مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی میگه یک مجلس قیبت شرکت کردم منم گناه نداشتم قیبت کردن مجبور رو به شنیدن شدم که شب توفیق نماز شب از من سم تو اینو نمی‌فهمه. مثال من تو کلاس پریروز روز اینجوری زدم برای ها گفتم آقا یه سیب افتاده روی کف کلاس، گچ بهش نشسته خاک بهش نشسته. میکروب آلودگی پر شماها همه متخصص مواد غذایی و پزشک حاضق و صاحب نظر تو بهداشتی من هیچ کی بلد نیستم و نمیفهم این سیب رو برداشتم با کمال جسارت و قدرت دارم گاز میزنم شما چنان وحشت میکنید چرا ترسیدی آقا چرا رنگتون عوض شد دیگه چطور جور عطی میکنی این رو گاز بزنی میگم اه ترسوی ببین یه گاز دیگم میزنم او به من میخنده میگه تو خیال میکنی شجاعی من میدونم این با تو چه میکنی این پر میکروبه بعد از این که فهمیدم این چه میگم وای خدا به تو بیا مرزه که به من توجه دادی من بلد نبودم من داشتم خودکشی می کردم علی وقتی ناله میزند تو نخلستان مدینه امام سجاد وقتی تو مناجاتش به خدا میگه خدا به تو پناه میبرم از این بخوام سراغ گناه برم او فهمیده گناه با دل میکنه ولی من وقتی که اینا رو نفهمیدم لذا او میگه من یه شب تو مجلس غیبت بشینم سالها رنج کشیدم تا این آینه من برنگرده انقدر طوفان داره می‌وزه که این آینه رو برگردونه انقدر حواملی واسط دادن که نمیذارن من آینه رو برگردونم یه شب تو مجلس غیبت نشستم که شب اومدم آینه رو تکن بدم دیدم حرکت نمی کنه من می فهمم اگه توی مجلس بشینم چه میشه لذا پا میشه از مجلس میره بیرون میدنه تو سرش شب قدر شب جمعه و نیمه های شبم میگه الهی اله استغفر الله ربی و اتوب و الهی. خدا اومدم بگم منو ببخش خدا اومدم بگم دستمو بگیر خدا اومدم بگم, بگم بیچارم خدا اومدم بگم اشکو من شکایت میکنم از این نفس من که اماره به سوء، من میخوام خوبشم تو کمکم کن خوبشم اما اونی که توجه بیمانا نداره قه قه میخنده خوشش میاد میگه خب الان ادامه بدید مجلس گهده یه بگیم بخندیم چرا اون میشینه این نمیشینه چرا یکی پای صحبت علی به مالک اشتره می میسوزه می وقتی سم رو به مالک خورندن در بین راه به سمت مصر مالک متوجه شد دیگه الان داره جن میده. گفت من حامل پیام علیم برای مردم مصر تا جان دارم را میرم رم نگفت دارم می, می خب حالا بذارید من تو بسترم ها شد حرکت کرد تا میتونست را رست گفت بزن فرمان علیک زمین نمونه به جایی رسید که دیگه نمیتونست رابره میافتاد سینه خیز رفت تا جان داد مالک آقا امار یاسر ای خدا شب قدره میخوایم خودمونو تکون بدیم و عوض کنیم و آدم بشم ای خدا امار یاسر نزدیک نود سالشه از بحبوره نوجوانی برای اسلام خونه دل خرده بابا یاسر اولین شهیده مادرش سمیه اولین شهید است خودش تمام دوران به پیغمبر رنج برد تمام 25 سال خاننشینی علی سوخت حالا تو جنگ سفین داره شهید میشه افتاد زمین تو جنگ سفین امار یاسر شهید شده یکی میگه دیدم شمشیر خود افتاد دویدم پشت سرش امماره علی بشنبه چه میگذره به علی میگه وقتی اومدیم به علی گفتیم آقا اممار هم شهید شد دیدیم شانه های علی از گریه میلرسه های اشریخ های اشریخ این محاسن آقا خیش شد فرمود منو ببرید بالای بدن اممار آوردیم کنار بدن اممار آقا هی نگاه کرده ای اشریخ بعد فرمود عین اممار عینذ الشهادته عین ابن طیهان عین اخوانی الذين مزوا على الحق این جوری چجوری طریق حق کرده اون آقایی که میگه دیدم عمار شمشیر خورد افتاد اومدم جلو دیدم اممار دیگه داره جون میده ولی سینه خیز را میره اومدم جلو اممار شکسته به کسته میتونه حرف بزنه گفتم اممار چه میکنی گفت من میخوام تمام و عمرم رو در دفاعی از علی صرف کنم اونی که اونجا افتاده دشمن علیه حالا که دیگه نیرو ندارم شمشیر بزنم میخوام برم خودم رو بندازم رو سینه دشمن علی جان بده. ای خدا ای خدا تو به جان امار و به روح به ما بکیشونی معانی رو حالا این امار اینجوریه اون مالک اشتر اونجوریه چرا یه عده دیگه اینجوریان که حالا درد دل علی رو که شب علیه با هم دیگه بخونیم یه مقداری خیلی گزراسری که به مراسم امشب درسیم و انشالله توبه نسوه داشته باشم شما که انشالله بی نیازید خطبه شش قبل از این یکی کهی بگم ابن عبل حدید مقتضلی نیست در عرب رسمه اگر کسی مظلوم واقع شد کسی به حرفش گوش نداد دیگه درد تو دلش زیاده رسم میاد بیرون میگه آی مردم کیه که به داده من برس ابن عبل حدید میگه یه آقای غریبه اومده بود مدینه دمچه مشکری براش پیش اومد تو کوچه ها داد میزد تا رسید به در خانه علی یه وقت دیدیم راوی نقل میکنه ابن عبل حدید این مینویسه علی در خانه شو باز کرد سر آورد بیرون گفت تو باز میتونی داد بزنی من دادم نمیتونم بزنم من داد هم نمیتونم بزنم الان از نهجون ولاغه میخونم که خود علی میگه چطور نمیتونم داد بزنم به ترتیب میام جلو یک خطبه شش الله به خدا قسم مازم تو مدفوع ان انحقی مستعصرن علیه منزو قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم حتی یوم الناس حاذا حضرت فرمودند سو به خدا قسم مادام از لحظه‌ای که جان پیغمبر رو خدا گرفت تا امروز حق منو از من گرفتند و دیگران رو بر من ترجیح دادهند و منو مظلوم قرار دادند این یک که قسم میخوره امیر عليه علیه السلام سوالله به خدا قسم که حق منو گرفتن و من مظلوم واقع شدم خطبه 29 آخر خطبه از ابتدای این خطبه امیر با مردم شروع میکنه به درد دل کردن ایوهن الناس المجتمع عبدانهم المختلفت و احواؤهم مرزمی که شما به وسیله بدنها با هم جمع شده ای دلاتون که با هم جمع شده نیست میاد تا قسمت آخر ومعه ای امامن بعدی تو قاتلون یعنی امام میخواد به اینا بگه که خب بیاید با من بریم معاویه رو برداریم از وسط بریم این موانع مسئله تکامل رو برداریم اینا جواب نمیدن به علی علی میگوید و مع. ای امام من بعدی چه قاتلون پس با کدوم امام بعد از من میخواهید مقابله کنید و والله من قرار چموها فریب خورده به خدا کسی است که گول شماها را بخورد الله اکبر ببینید یعنی علی می‌خواد بگه شما میخواید منو گول بزنید اومدید گفتید یا علی با تو به عزم منو آوردی تو میدون به خدا فریب خورده کسی است که فریب شما را بخوره و من فازا بكم فقد فاز والله به سحمل اخیبه و من رما بكم فقد رما به اطواق ناصل میگه به خدا کسیم کسیم بخواد با شماها ها رستگار بشه پیروز بشه این مثل یه قرعه است که چیز پوچ گیرش اومده و کسی بخواد با شما بره میدون تیر تیروندازه کمان شکسته است این تیرانداز نمیتونه باشه از بحث و والله لا صدق و قولکم ولا اسمع في نصرکم ولا اوعد العدو بكم ما بالکم ما دواکم ما کپکم شما رو به خدا در دل عزت رو ببینید میگه به خدا قسم سخنان شما رو نمیتونم تصدیق بکنم چشم امید به یاری شما ندارم از طریق شما نمیتونم دشمنان دین رو بترسونم ترسونم شما چیتونه دردتون چیه درمانتون کدومه حبیرتون کیه چرا علی اینجوری ما مردم حرف میزنه آخه اینا کسانی که تو کوفه پای وعض علی مینشستن. علی داره خطوره برای اینا میخونه یعنی این بذر مرده این آب گبارای رشدهنده علی ابن عبی طالب هر چی می ریزه سبز نمیشه میگه شما چی کنه بعد خود عضرت مشخص میکنه با این توضیحی که عرض کردم یعنی اگر دل مرد تحصیلی نمیشه پذیرو من این نتیجه رو امشب بگیرم از شبه علی ابن عبی طالب علیه السلام که توجه پیدا کنیم به این معنی از گناه بترسیم از لغزش بترسیم ظاهران یه نماز رو میذارم کنار حالا یه روز صبح خوابم برد نمازم و نخوندم ولی برادر از این دید نگاه کن این یک لایه رو قلب دیجاد میکنه یه نگاه به نامحرم یه لایه دیگه رو قلب دیجاد میکنه خواهرم یه بیتوجری به حجابت، یه مقدار دل سخت میکنه آقا یه ظلم به همسرت یه مقدار دلت سنگین میکنه خانم یه بیانصافی در حق شوهرداری این قصابت رو ایجاد میکنه جوان دلت در مادر رو شکستن دلت رو میکنه حاجه هایی که میتونی به فقرا برسی یک مراجعه داری جوابشو نمیدی یه آه میکشه این دلت رو میکنه و ها کذا بریم جلو یه وقت به خودمون میاییم ای وای که این قلب الهی ما اونقدر مثل پیله ابریشم دورش پیله دنیده شده چگونه میخواد پروانه خارج بشه و پرواز بکنه به دست خودم خودم رو زندانی کردم در خطبه سد و و دو و قد قال قائلون اینکه علا حاضر امر یبن ابیطالب طالب لحریسون عجیبه میگه کسی به من گفت یا علی چقدر حرص میزنی برای خلافت دقت بکنی اما چگونه واجگونه میشه آخه ببینی بنده برم پیش طبیب یا طبیب بیاد سراغ من طبیب داره به من میگه آقا چرا رنگت انقدر زرده چرا به فکر مداواد نیستی چرا دارو تهیه نمی کنی من برگردم به طبیب چی چیت اینقدر بی خود سرسدا میکنی شلوغ میکنی داری منو عذیت میکنی نه اینکه یه بار آقا در این حدم میگم میگم آقای طبیب ممنونم که برای من دل می سوزانی ولی ببخشید من حال طبعیت از فرمان شما رو ندارم این یه حرفه یه وقت میگم آقا زبان این طبیبه ببندید ازیت هم میکنه نمیداره آسایش داشته باشم علی داره داد میزنه. آی مردم من باید بیام شما رو رشد بدم اون وقت میگه وقد قال قائلون یه گوینده ای میگه انک علی هازل حمر ابن ابی طالب علی چقدر حرف میزنید چی که انقد مقام میخای فقلت من علی گفتم بل انتم والله الله احرس و ابعد شما حریص و انما طلب تو حقا لی و انتون تحولون بینی و او. من دارم حقم رو نگیرم خدا به من گفته پشو برو کار مردم رو راست کن اما شما بین من و حقم حائل شدید نمیذارید من حق به مردم برسونم و تزربون وجهی دونه و شما از من روی برگردوندید بعد سر و آسمان بلند میکنه با خدا در دل میکنه اللهم اینی از تعدی که و من هم ای خدا من به تو شکایت میکنم از قریش و اونهایی که با این قریش یاری کردن بر فا نهم هم او رحمی اینا قطع رحم کردن و سقبرو عظیم منزلتی این مقام عظیم مرا کوچک شمردن و او على منازعتی امرن هولی و اجتماع کردن در خصوص کاری که اون کار حق من بود منازعه ایجاد کردن با من در مورد حق خود من تا میرسه به قضیه امشب درد دل علی رو در رابطه با امشب قبل از اون اجازه بدید از سی هم خطبه سی و یکی دوتی که خیلی جانسوزه خطبه سی من نو به من لایوتی و اضا امرت من گرفتار شد. علی میگه گرفتار شدم به من به مرضی که لا یبی و ازا امرتو وقتی امر میکنم گوش نمیدن اطاعت نمیکنن سوال خب چرا بیمار دستور پزشک رو عمل نمیکنه راست بدید به قساوت قلب که غصی شد و لا یجیب و ازا دعوتو وقتی شما رو دعوت میکنم اجابت نمیکنید لا لکم ای ب اصلها ما تنتظرونه به نصرکم ربکم چگونه میشه امید به شما داشت که با شما نصرت خدا رو ما در جامعه ایجاد کنیم اما دینون یجمعکم ولا حمیه تطهمشکم نه دین دارید که شما رو به وسلمید دین دور رو هم جمع کنن نه غیرت دارید که لاقل به خاطر غیرت به خشم بیاید فقط این دو تیکه رو تو این خطبه نظر دارم اقوم و فیکم مستسرخن سرخه را در خطبه عزت زهرا من قبلا برای معنی کردم سرخه یعنی سریادی که از اعماق جان برخیزه اقوم و فیکم مستسرخن من اومدم تو شما ایستادم دارم از اعماق جانم ناله میزنم چرا جواب من علی رو نمیدید؟ ای داری ببینید این بیان خدا علی خطبه 39 میگه اقوم فیکم مستصرخن سرخه من فریادی سر که از اعماق جان من برمیخیزه و انادیکم ندا میدم شما رو صداتون میکنم متقمعسا یعنی واقعا میگم شما رو به خدا علی رو یاری کنید سلا تسمعون لی قولا ولا تطیعون لی امرا کسی به حرف من گوش نمیده خب حالا وقتی گوش نمیده چه باید بکنه کمیل میگه تو بازار کوفه نشسته بودم امیر المؤمنین رسید بن گفت کمیل بیا با هم در این بیرون دست من گرفت از شهر برد بیرون کنار نهر آبی نشستیم حضرت دستی گذاشتن رو سینه مبارک فرمودن به خدا قسم حقایق در این سینه جم شده تنگی میکنه اما نمیدینم کسی که براش یعنی این علی وقتی میگه سلونی سلونی قبل انتفقدونی به جای اون که بگن علی بگو راز بخشا ای علی مرتضا ای پس از سوال حسن حسنال قضا ای علیشت جمله عقل و دین بودی شمعی واگو به اونچه که ای اما به جای اینکه این رو بگن چی میگن؟ علی رو مسخره میکنه میگه میتونه بگیم وای سر من چند تار. چرا مگه اینا ندیده بودن علی چه مقامی داشت چه منزلتی داشت چه بزرگی داشت چه عظمت داشت پیغمبر راجب علی چه گفته بود چرا میدانستن اما دل غصی شده لذا در این شب قرر شب نوزده هم. شب مجروح شدن علی ابن ابی طالب برادران و خواهران بیایید گناه به ترسیم بیایید دل هامون رو شستشو بدیم بیایم آینه دل رو زنگارش رو بز تا حقایق بر این دل تابیدن بگیرد خطبه هفتاد رو بخونم بحثمو جنبندگی کنم تکملش برای شب های بعد انشالله ملکت الله نیعینی شب 19 همه یه چشمم یه مختصری رو هم اومد نشسته و انا جالسون من نشسته بودم همینطور که نشسته بودم خواب کشمم رو گرفت سسنحه لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم یه مختصر چرتی شما رو هم اومد پیغمبر تو عالم خواب دیدم فقل تو خطبه هفتاد و نحجل و فقل تو گفتم یا رسول الله مازا لقیت من امت که من العبد واللدد ای رسول خدا میدونی از امت تو چل جاجت و سرسختی و عذیت دیدم ای وای شما اینو اول بیارید علی پیغمبرو چقدر دوست داره علی احترام به پیغمبر چگونه میگذاره علی نسبت به پیغمبر یک مسلمان تمام ایاری که در مقابل پیغمبر خاضه به تمام معناس لیلت المدی، وقتی خدا میگه جای او خابیده و منن ناف من یشری نفسه و ابتقاء مرزات الله تمام وجودشو در طبقه اخلاص گذاشته وقت این علی است که از امت پیغمبر به پیغمبر شکایت کنه وقتی علی دیگه بود که پیغمبر با امتش چه جوری علاقه داشت علی نشسته توی اتاق پیغمبر در حال احتضار جبرائیل وارد شد یا رسول الله اجرائل اومد یا رسول الله اجازه میدی جان شما رو بگیرم پیغمبر فرمود من مشکلی ندارم آمادم ولی یه لحظه صبر کن جبرائیل برگرده چرا چی شده یا رسول الله جبرائیل لحظاتی قبل اومد گفت خدا میگه یا رسول الله بهترین بنده من بودی هر چی بخوای برات انجام میدم هر چی میخوای بخوا من شفاعت امتم رو خواستم میخوام جبرائیل برگرده وعده رو بیاره خاطر جمع بشم بعد جانم رو بگیری جبرائیل اومد یا رسول الله پیغمبر فرمود شفاعت امتت رو به تو دادیم هر جور تو میخوای سابختیاری اینو مگه علی ندیده علاقه پیغمبر با وجود این ببینید امت با علی چه کرده ای وای امت با علی چه کرد هنوز چیزی از رهلت پیغمبر نگذشت همسر علی رو کشتن در پهلویه همسرش زدن پسر علی رو کشتن علی رو 25 سال خانه نشین کردن بعد از 25 سال خانه نشین حالا که اومدن به علی میگن علی بیا آماده ایم در رکاب تو چه کردن این 5 سال که علی میگه ماذا لقیت من امتك من العود واللدد یا رسول الله از این امت تو من چه دیدم دل علی خون بوده است لذا سر در دل چاه میکرد علی اما علی انقدر مظلومه تا زهرا زنده بود با زهرا درد دل میکرد اما وقتی که زهرا رو از علی گرفتن این سنگ صبور علی هم گرفته شد لذا خود زهرا هم توجه به این معنا داشت میگن وقتی که زهرا داشت از دنیا میرفت علی کنار به سر زهرا نشسته زهرا میگه علی جان وسیعت به تو بکنم مظلومیت علی رو ببینید علی جان وسیعت به تو بکنم یا عباس عمومون رو دعوت کنم وسیعت چرا زهرای حرف زده دقت کنید روش مگه زهرا از علی بالاتر میشناسه زهرا خودشو سپر بلای علی کرده زهرا مثل پروانه دور شمع وجود علی اونقدر گشت تا بال و پرش سو چرا اینو میگه چون زهرا میدونه اونقدر دست علی بسته است اونقدر علی مظلومه شب نتونه راهیت زهرا رو اجرا کنه میگه برای تو ایجاد زحمت نکنم لذا علی جان اگه تو اذیت میشی من عموم عباس رو بگم بیاد به او وصیت بکنیم عموی پیغمبر و عموی علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین فرمودند نه زهرا جان وصیت‌هات رو به من بکن ها رو که وقتی تموم شد چشماشو دوخ به چشمان علی شروع کرد گریه کرد علی میفرسه زهرا جان برای کی گریه می‌کنی جوانی است نه یا علی جوانی من که غم نداره دارم میرم پیش بابام رسول خدا خوشحالم برای بچه ها که خورد ساله اون که غمی نداره بابایی مثل تو دارن من غم ندارم پس زهره جان برای چه گریه میکنی؟ علی جان برای تنهایی تو در میان این مردم گریه میکنی علی برای تنهایی تو در میان این مردم گریه میکنم و من امشب فریاد بزنم علی جان نه در زمان خود تنها بودی آنان که دل تورا شکستند در دوره ما هنوز هستند علیقدر مظلومه هنوز به جرم شیعه علی میان تو سف نماز جماعت شیعه علی رو به مسلسل میبندند آقا مگر علی چه کرده در این عالم جز اینکه خودش و شیعان علی در طول تاریخ دم از فضیلت دم از ایسار دم از گدش دم از انسانیت دادن جامعه که انسانیت رو نمیخواد ببینه این امت به نام اسلام با علی اون می کند که علی در همچه شبی در حالت خواب به پیغمبر بگه یا رسول الله من چه دیدم از امت تو پیغمبری که به جبرائیل میگه وعده شفاعت امت رو آوردی تا من آرام بشم این پیغمبر به علی چه میگه ادامه خود برو ببینید سقاله پیغمبر فرمود ادعا علیهم ای علی جان نفرین کنین امت رو یعنی چه شرده این امت امتی که پیغمبر در حال جون دادن میگه خدا شفاعت و, و میخوام اما بعد از پیغمبر چه کرده ان با این خانواده که پیغمبر میگه علی نفرین کن وقتی امام سجاد علیه سلام از سفر کربلا برگشتن به شام برگشتن به مدینه برای جمع خصوصی ها اینو فرمودن فرمودن اگر پیغمبر در بیست و سه سال به شب و روز به امت میگفت بعد از من اهل بیت منو بیازاری بیشتر از اینی که در این سفر به سر ما آوردن نمی شد و حالون که پیغمبر در تمام این بیست سال می گفت قل لا اسألكم اجرن الا المودت فی القربا این آیه بعد نازل شده میدونم اما مضمونش در این 23 سال پیغمبر میفرمود پیغمبر چه کردن با این امت با علی پیغمبر بالا میرفت میگفت زهرا پایین می میگفت زهرا این منافقانی که خودشونو در اسلام جازده بودن عقده ها رو گرفتن تو دلشون حالا پیغمبر زنده است نمیتونه عقدهش رو خالی کنه بعد از رحلت پیغمبر میاد به صورت سیلی میزنه تو صورت دختر پیغمبر چه کردن این امت اولین سیلی که به صورت یک زن زدن بعد از رهلت پیغمبر به صورت دخترش زدن اولین زن که در دنیای اسلام بعد از رهلت پیغمبر اسیرش کردن زینب نوی پیغمبر اسیر کردند. اولین خانه که بعد از رهلت پیغمبر به بهانه خارجی بودن آتشش زدند خانه دختر داماد علی بود اولین انسان برجسته الهی رو به عنوان قاضی شرع به عنوان حاکم شرع فتوا دادن قد خرجت حسین ابن علی ام دین جده و حکم قتلش رو سادر کردن شرعه قاضی‌ها، ها به نام اسلام با پسر پیغمبر حسین کردن اولین سری که از این خاندان از این شهر با اون شهر از خانواده پیغمبر بود دیگه چی میخوان بکنن وقت این علی با وجود این در پنج سال بعد از نیست پنج سال خانه نشینی بالا پایین داد پریاد مردم بیاین دستتون رو بگیرم. اما این مردم حتی مثل فردا سهری اصباق ابن نباطر میگه یه وقتی دم صدا بلند شد که علی رو شهید کردند من و چند تا از اصحاب خاص علی حجر و دیگران و اینا چی بوده؟ اومدیم دم در خانه علی دیدیم جمعیت جمع شده پشت در صدای شیون و گریم بلنده ما هم نشستین زارزار گریه کرد امام و اومدن در کردن فرمودن که جمعیت حال بابام بده برید این صدای گریه شما بابام میآزاره. میازاره علی دلش برای این مردم میتردید یا علی علی غمخار و بود. علی با تمام وجودش میخواست دست این مردم رو بگیره بزر وجود اینا رو رشد بده صدای ناله اینها دل علی رو میخراشه مردم برید بذارید بابام سراحت کنه جمعیت رفتن اسبق میگه دیدم پامیارای حرکت نداره کجا برم میگه میتونم برگردم پشت در نشستم یه وقت از اندرون صدای گریه بچه های علی بلند شد منم پشت در شروع کردم گریه کردن امام مجتبه اومدن دم در فرمودن اسبق توی گفتم بله نرفتی گفت صدای گریه اومد چو بابام گفت این گریه از کجاست گفتیم پشت دره گفتیم مگه در دستی مگه در خانه علی رو به روی شیعانش میبندن از بیا از میگه رفتم تو دیدم دستمالی به سر علی بشته اونقدر خون از شهره علی رفته چهره زرد شده این دستمال زردی که به سر علی بستن بین زردی دستمال و زردی چهره علی نمیتونم فرق بدن اما ببینید علی قمخار امت رو میگه وقتی من نشستم علی بریده بریده فرمود اسفال سلوری سلولی قبلت تفقه بودی اسفال بپرس از من قبل از اون که از میان شما بروم بذار یک کلمه دیجم به شما بیاموزم و وقت علی داره به پیغمبر میگه یا رسول الله ببین این امت با من چه کردن پیغمبر فرموده علی جان نفرین کن نفرین علی چیه علی میگه منم تو خواب گفتم عبدالنی یل... الله به هم خیرا خیرا منهم و ابدلهم بی شرا لهم منی خدایا از من بتر رو بر اینها ها مسلط کن و از بهتر از اینا رو به من بده یعنی معنی که خدایا منو از این مردم بگیر لذا علی با تمام وجودش که این زحمات رو کشی ماه رمضان سال آخر سال عمرش دیگه علی مرتب منتظره سهر نوزه رمزان بود روز سیزده رمزان بالای منبر تو مسجد کوفه خطاب که حسن جانم چقدر از رمزان گذشته باباجون 13 روز اون طرف مجلس حسین نشسته بود باباجون چقدر از رمزان باقی مونده بابا هیده روز علی میدونه میخواد نظر همه رو جلب کنه چرا میپرسی بابا نه میخوام ببینم چقدر مونده چرا امسال شما رمزانه یه رمضان دیگریه نه نزدیک هست وعده محبوبم برسه و من خلاس بشم از این امت امشبم هم افتار اومد خونه امکل ام شم ام کلثوم میگفت هی میومد بیرون یه نگاه میکرد به آسمان سرشو میانداخت پایین میفرمود اللهم بارک لیس خدایا مرگ رو به من مبارک گردم ام کلثوم میگه گفتم بابا جون تو که امشب دل منو بردی چرا همش از مرگ میگی چی بابا امشب حالت منغله کو والله لا ها به ها دست به محاسنشون کشیدن فرمودن به خدا قسم این خذاب میشه حنا گرفته میشه بخون ازنبعث اشقاها وقتی شغی ترین در این امت برخیزد تا اینکه نیمه های شب حرکت کرد به سوی مسجد همه جنوش گرفتن ولی حضرت اشعاری میتراید خلو سبیل المؤمن المجاهدی لا اله الا الله يعبد غيره واحدي ويوقز ناسا علل اونا میگن نرو علی میگه خلو سبیل المؤمن المجاهدی باز کنید راه مؤمن مجاهد فی سبیل الله را علی مجاهد فی سبیل دره میر جهاد دره میر محرابی که جون به جان آخرین تسلیم کند لا یعبد غیر الواحد غیر خدای واحد را این علی عبادت نکرده و یوغز ناسه علم مساجدی در مساجد به سوی مساجد مردم را ندا می داد فریاد میزد زد اومد را پشت بام مسجد الله اکبر صدای ازان علی آنانی که گوش دلشون میشنید و چشم دلشون باز بود متوجه شدن ستونهای مسجد میگریه سخف مسجد ازاداره این آخرین ازام علیش دیگه صدای علی و این مسجد نمی دیگه پشت بام مسجد این علی نمی روید. علی از آن رو گفت از مسجد اومد پایین اید دیست چهار تو مسجد خوابیدن من جمله ابن مالجم اومد با خنده ابن مالجم رو بیدار کرد ابن مالجم پاشو نماز نزدیکه اومد تو مهرابه عبادت ایستاد علی نماز رو شروع کرد این سر دوبار شمشیر خورده شکافته شده و پیغمبر اینو به هم بسته یک بار در جنگ خندق شمشیر امر ابن به این فرق علی اومده که فرق شکافته شده بار دوم یا قبلش در جنگ احود شمشیر به پرق علی آمد که در جنگ احود 85 و پنج زخم علی برداشت و هشتاد و پنج بار اونقدر زخم عمیق بود علی افتاد به زمین ولی پا شد بی پیغمبر تنهاست از او حمایت کرد جبرائیل بین آسمان و زمین به پیغمبر گفت نهبه علیم مظهر العجائف تجد ها لک لکه سن این سر دوبار شکافته شده حالا سر و علی از موه میاره بالا شمشیرم از بالا میاد به جایی که دوبار شکافته شده اصابت میکنه ولی وقتی شمشیر به فرد علی خورد، نگوست واری سرم گو بسم الله و به و فی سبیل الله و علا منت رسول الله خود و رب دلکه به خدای که به علی راحت شد بعد اولین پیام پشت سریع رو فرمون بیا جنوب نماز قصد نشارد علی دیگه نمیتونه نماز میکنه میگه دیدی و علی تو مهرام نشسته داره نمازش رو تموم میکنه اما گایی به راست میفته گایی به چپ میفته بدان علی تاگلش رو از دست داده بود یه وقت دیدیم به الله می منادی ندا درد تهد دارد و الله اركان الهدا و نتمسات علامت تعا و القربة المصرح قتل ابن عم مصطفى قتل الوسیل مجتبا قتل علی المرتزا قتلهو اشغال العشقیاخ حاج میگوید دیدم صدای گجد شدن علی فضا رو پر کرد زن و كوفه کوفه بسر زنان توی محراب مسجد و مسجد حاضر شدن نماز تموم شد علی رو به منزل بیارن دیدن علی رو پاش نمیتونه حرکت کنه یه گلی می آوردن چار گوشه یه گلیم رو مثل برانکابی بگیرن تا علی رو به این صورت بیارن به در منزل رسیدن یا وقت علی فرموز کنی آقا چرا منو از این برانکاب پایین بیاری زیر بغلمو بگیری چرا چون زینبن سهم ندارد. یا علی شروع بلا